الله، با آلت طیبین و آرنان معصومین، الله دائمی علاج را مجد و در مباحث مطلق و مکیّا درس شد یکی از مباحث با اون مقدمات یا مبادی تصوری مطرح شده. البته چند در فاصله. یه نوع پریشانی وجود دارم و حال میشه مطالب رو منظم کرد و تنظیم کرد. و یکی از مطالبی که فعلا در کتب آمده کتب اصولی ما بحث مقدمات حکمت ما از این مبادی همی بحث مقدمات حکمت رو بکنیم و بعد بحث احسان مطلق، یعنی اسم جنس و احلت و جنس و مفرد محل های دلا این چند که با امانان مطلقی ایدانا متعبز میشه اما نصد مقدمات حکمت اجمال رضی یه که گال رضی یه در کلمات رسولین ما سه مثل به عنوان مقدمات حکمت سه بشید و قالبا در همین جایی در موادس موادی تصوری متعبس شدن این سه مقدمه عبارت یعنی مقدمه عبارتاً یک در مقام بیان باشه کرده دو قرینهی نباشه سه قدر متقنی هم نباشه سه سه مقدمه مختصر که باید توضیح داده بشه. مرحوم قصدق قدس الله و نحسه ایشون همی سه مقدمه آوردن لکن این مقدمه سوم رو جزو مقدمه ها زیست نکردن جزاردانه بحث کردند. و مقدمه اولش خودشون اضافه کردن که متکلم در مقام می که اطلاق ممکن باشه یعنی با شرطش نسته اطلاق این رو ما دیروز در مواحثی که جزو مبادیه ستر بود، بود روزای گذشته از مرموم ناینی به عنوان یک مقدمه فی نفسه که تقاقل بین اطلاق و تقریب چیه این عنوان طالبن نرم شدن ایشون اون مطلب رو یک مقدمه قرار دادن به در حقیقت مگو استاد از مقدمات حکمت در حقیقت دو مقدمه آوردهن یکی رو هم خودشون اضافه کردن اگر آوین خواستن برای اینکه چون این کتابه که توی چاپ شده که خیلی به اصطلاح صرفت و رنگ و اشاره و یه چیزا نداره مثلا این حالا یک ای چاپ برای این که میخوان در هاشیل آقل توضیح بدن در جلد پنگ که آخرین جلد ما بارسته الکازه صفیه 264 از این چاپی که من دارم چون بعد چاپ دیگری شده ایشون بعد تنگیدی کردن که اگر مقدمه خاصی باشه به الا مقاییت باشه متعرض شدن به عنوان یک قرینه آمنه که اسم این قرنه مقدمات حکمته و در مقدمات حکمت سه مطلب رو داره علا اول انیقون المتکلم متمکنن من البیان ولی اصیان بگیرون دوما متکن از بیان و اصیان به قید باشه در تقریه 366 الامر و ثانی انیقون المتکلم بی مقام البیان این متکلم در مقام بیان این مقدمه اول دیگرانه ایشون دوم قرار داد اون مقدمه اولی که ایشون نیست نیست در کلمات اصحاب ما این عنوان امر دوم و یه توضیحی هم دادن البته این رو اصحاب ما دارن اما بیشتر مطلب دوم ایشان اگر شک کردیم متکلم در مقام بیان هست یا نه اصل چیه؟ یک مطلب دیگم ایشون اضافه کرده در سی ساده شست و هرس اونه نهو مثلا اگر آنوان میزدن بهتر برای تعلیم و تعلیم بود حالا من آنوان میذارم که آنوان راحت بشم دو تا امر که مرا از این که متکلم در مقام بیانه یعنی چی؟ یکیش اینه یکیشم اگر شک کردیم در مقام بیان هزیانه نه این دو تا مطلب رو ایشون در اینجا متعلیم در سفیه س قلعه امرو ساله خنلا یکی از متکلم به قرینه مقدمه سوم از مقدمات هشمه قرینه ای ذکر نکنه این در قلمات مشغول مقدمه درمومه در کتاب به مقدمه سوم من توضیح میدم که اگر خواستی مراجعه کنیم مقابلات بشه کاملا روشن بشه این سه مقدمه که ایشون چیدن که از کرده مقدمه ازور مال خود ایشانه مقدمه اول در کلمات لاهی خود شیخ مقدم مستقلی بوده ایشون بحثشان در غیر مقدمه اول نوشتن با ما مقدمه اول دوم و سوم هم در کلمات اعلی موجود به ورمان اول و دوم بعد در صفحه 370 نوشتن بقیه المقام عمران اول ان القدرالمتفقا به حسب التخاطب این همون مقدمه یک و ایشان ایشون با عنوان تکلیه بحث قرار دادن مقدمه 1 میگه که قضیه نباشه چون اگه باشه مانه از این مقاله اطلاق از این دایم پابندязаه حالا موثقن شرعیه در از ایشان به جای اینکه مقدمه قرار بدن با عنوان بدی امران مشتش شد پس این ال امرال اول ایشان که در صفحه 370 همون بحث عبر که در کلمات ایده از علمای اصول ما در مقدمه سوم ذکر شده. و این مسئله مساله یواشار تو اصول ما که غالبا متعاقباً از اعاده اطلاق است یا شده. مثلا ایده گفت مانع، صاحب کفای گفت مانع نیست. مرحوم استاد در اینجا به عنوان ذی بحث قرار دادن. شد. اینا در مقدمه سوم در این نسخه ای که من دارم اگر اونا نسخه جدید دارن نگاه بکنه دوه رو نداره نوشته ولی اونا امران از اول نوشتن از سانی نوشته اینه در این مقداری که من در این کتاب نگاه کنم نسخه من از سانی رو نداره ایشون حالا داره میگم که اینا رو بخون میخواد زعمت من خودم هم نمیفهمیدم <laughs> منم همونجه. من احتمال دادم من اوش فرمان درسته احتمال دادم در تفریه 372 73 منذر میخوام نوشتم از تغییر هر یه از تغییر مجاز یه مجاز من تو هاشی خودم نوشتم از باره, باره, ها باره ها و نهازه و من اوش که درست نگیر و این کافه جدیدی که شده چون هر چی نگاه کنیز دوبون نمیاد لیکن آخرش به که به استعداده ذاتی فرقیده کی باره همین باشه عمر دوبارش باید همین درست کنم از چاپ کردن پس بنابراین دو تا امر به عنوان زیل وقتیشون رو اردن یکیش مقدمه ای ترونه. چون ایشون مثلا اشکال داشتن متعبیل تفصیل قادم ایشون متعبضش نشدن یکیش هم آیا تغییر مستلزم مجاوریت هر یا نه طبعا ایشان چون توی آم ملتزه مجازیت نبود تو مسلم به طریقه اولا کسی تو آم چون از گوه کل آدم بعد از گوه لا سوکن پساق کل هم اول کل بعد از اون کل رفیلیت کرد در اونجایشون ملتزه به تقییز مجازیت نشد کسی در, در اونجا بگه مجاز نیست در مانه نوفی به طریقه اولا میگه مجاز نیست مثل احلال بین نه هم نبی انده نیست اینجا حل الله به کنیم درده که امروز بودن که در شهره مجازیت ایشون فرموزن از تقیید حلی از سرزمون مجاز فیهه بجه هم این هم عمر سانی که ایشون در زید بحث قرار دادن روشن این اینکه که ایشون در بحث مقدمات تکشمت بردن البته توضیحی ندادن بله که ربط بحث چیه بله حال کردن این ترتیب بحث ایشان البته ما صابرن توضیحش مفصل دادیم کیفیت بحث به طور کلی که مرحوم استاد ایشون قبل از این بحث مقدماتی همچنان متعرض اقسام مطلق شدند بله. در صفحه سیسدو پنجاوو اجناس و بعد اعلام اجناس و نکره رو وردند قبل از بحث اقسام مطلق، همین تقسیمی رو که برای حیسیات ماهیت بود آوردن این تقسیمی که شون ماهیت رو به پنج به پنج جور یعنی پنج جور به یک معنا لحاظ کردن یا ماهیت است یا مقصد میشه مثلا که شد یا لا به شرط مقصد نیست یا قسمی یا به شرطی یا به لا این مطلب رو ایشون اول آوردن بعد اقسام مطلق رو آوردن بعد مقدمات حکمت رو بردن. در زمینه مقدمات حکمت دو تا بحث اوردن یکی مقدمه ثومی که من قدی گفتم که ایشون برازی کرد یکی هم آیا تقیید موجه مجازیت میشه یا نمیشه این خلاصه مقدمه هستی که مرموم استاد در اینجا قبل از بحث حمل مطلق بر مقاید اگر به این تقریب بحث نوشته بشه برای شما جمع جور کردنش راحت تر این راجع به این مطلبی که ایشان متعرض شد اما غیر از ایشان متعارد در بحثشون اینجوری بوده که وقتی مطرح کردن آیا مطلق اونا اول مطرح کردن که آیا مطلق بعد از تقریب مجازه یا اون وقت بحث مجاز رو که مطرح کردن به خلاف آقای که آخر محضی درمو بردن اونا اولو بردن اون وقت آمادن گفتم برای مجازیت محتمیست برای این که رعی مشهور و رعی سلطان رو ببینیم چون مشهور در محکوم مطلق شیو دیده بودن سلطان ندیده بود این رو اینجوری قرار دادن متعرض رعی مشهور و رعی سلطان برای توضیح رعی سلطان اون مقدمه رو آوردن که ماهیت لحاظش یا منحیصویی یهیت که این لحاظ مخصم میشه به سه رفت لا به شرط رسمی و به شرطشی و به شرط لا. این مقدمه رو آوردن برای حرف اثبات حرف مشهور و بعد از این مقدمه متعرض این نقطه شدن که حق این است که تقیید مجاز نیست چون متعرض این نقطه شدن این که تقیید مجاز نیست آمدن باز نقطه دیگی تفریح اناله اگر گفتیم تقیید مجاز خوب دقت رو کنید. اگر گفتیم تقیید مجاز اگر شک کردیم تقیید شده یا نه اصالت و عدم قرینه کافیست اصالت و حقیقت کافیست دو تا باشن یه جمعشن. ما شک کردیم آیا تقیید شده یا نشده تمثلت میکنیم به اساس و حقیقته چرا؟ چون مطلق وز شده بود مادل علا شای انفیجنته شای انفیجنته این حقیقت درش بود تقیید مجاز بود شک کردیم در تقیید شکید در مجازیت دیگه؟ پس برمیگردیم بر اصالت حقیقه برگردیم بر اصالت حقیقه مطلق را هم بر مطلق میسند روشن شد نقطه یعنی علماء ما امام مثل معاضیا مثل مایبور جدی اینا از این زاویه بحث وارد شدن نیم روشن شد که اولا تغییر مجاز یانه برای توضیح این که تغییر مجاز اون مقدمه بروردن که ماهیت یا, یا مانعی چیزی است یا که لا به شرط واقع میشه یا به شرط, به شرط هست یا به اون مقدمتا قرار دادن بعض در حق این است مطلق ورصد برای ماهیت منتهییه و در مطلق شیوع و جریان نخواهد این حقیقت ثابت شد پس اگه شک کردید که آیا مطلق اراده شده نشده نه اساس رنگی میگه بله مطلقه چون مجاز تقیید مجاز به قرینه نمیخواد بعد از هر کار کردن برای اساس میکنیم که این به اصطلاح مطلقه اون اگر اینجور گفتنم اگر گفتیم تریب مجاز نیست پس با اساس الهی لحایت میشونیم اثبات و مطلع رو کنیم چی جور اثبات و مطلع رو مقدمات یکی برد هرکی وقت رو شدشون وقت و مقدمات یکی برد در یک به اصطلاح ما ترایند طبیعی تختیر ترار دادن یعنی اگر مقاله با قول خودشون صحبت مثل مشهور رو گرفتیم برای اثبات اطلاق هیچ چیزی نمیخوایم چیه نمیخوایم شور وافرق حقیقت در شیوع تغییرم مجاز شک میکنیم اساس الحیله هم در مطلقه باشه اون بحثه اونجوریه خود اساس الحیله به نفسه کافیه بحث دیگه نمیخوام اساس داره نمیخواد اما اگه گفت تغییر مجاز نیست یعنی هم مطلق حقیقت هم تغییر حقیقت هر دو حیله دارن اینجا برای اینکه اثبات اطلاق شو ماهیان منحیصوریت دیگه تو شیوع و سرایان نقابیده برای اثبات شیوع و سرایان دو مقدمات حکمت پنام میدنید دیدید مرموم استاد اون روش طبیعی بحث رو انجام ندادن اول مقدمات ماهیت رو بعد اخصار و مطلق رو بعد مقدمات حکمت رو آخر بحث هم مثل همین و جول مجازی اولا خیلی بحث مشرهه من همیشه عرض کردم غیر از خود مسئله همیشه اون منهج طبیعی و روش طبیعی و اون به اصطلاح چی یعنی المتیودولوژی میگن اون متد بحث و روش بحث خیلی مهمه اون آمدن بحث مقدمات حکمت در یک جایگاه مناسب خودش قرار دادن پس بحث اینجوری رو شروع کردن مجاز تقیید تقیید مجاز است یا نه اگر تقیید مجاز است اثبات اطلاق هیچی نمیخوا اصلاحال حیزه که یک اصلاحال هیست کافیست هیچی نمیخوا. این رو البته علمای ما اینجا و شاید حال نمیدونم مثلا نظر مبارک شونم به کلمات اهل سنت بود، روی این بحثی که من آن مطرح کردم براتون روشن شد اصلا بحث مقدمات حکمت در کساب و اهل احل سنت میامده. بحث و مقدمات حکمه تو این چند سکت و اصولی جان دهل سن دیدن، اصلا کلن این بحث نیامده. این بیشتر در وصول متاخترشی شیعه آمده مقدمات حکمه حالا چرا؟ چرا شما روشن شد چون تقیید رو غالبا همشون نهالا غالبا مجاز میگنستن یعنی مطلق مادر لعراشای اندیجنسن بود وقتی در شیوع بود شک میکنیم آیا تقییب کرده یا نفرده مصرق مراد هست یا نه شک آیا مجازت یا حقیقت خب اصلاح هرینگی حقیقت اگر حقیقت شده یه <تصفيق> یعنی ادهیشون معلوم میشه این سریانی از کم در صحبت هم از کم مشکول مثل ابن حاجمونین ها ادهی زیادی شده ماهیت منهی تویهی نوشتن لیکن باز بحث مجاز و حقیقت مفرق کردن و اینکه که بحث احتمال بسیار قوی داره که اونها حال بودن که این حقیقت است و تغییر مجاز هست و هر حال ما فعلا در کتب عهد سلنه هست بحث مقدمات حکمت رو نمی بینیم در کتب متحکر ما مثل آزیا من آمده منحجه و اینجوری قرار داده رو این روش بحث نفیجی گیری کرده گفتن اگر بگیم تقیید مجازه دوی کافیه که از مقدمت است. اگر گفتیم تقیید موجه مجازیت نمیشه هنوز هم حقیقته هم مطلب حقیقت هم تقیید پس چطور اثبات کنید که اراده همه کرده الله همه تمام افاده ده گفتن در این صورت نیاز مقدمات نکمت داریم در این صورت یک قاعده عامه داره. احتمال بسیار قوی داره که آدمای اصولیین اهل سنتشون یا از اون نقطه یا حتی برتر سن اگر به حقیقت بودن شاید معتقد بودن که تقیید هیچگاه نیاز به مقدمات حکمت نداره. به اصطلاح به اباضیه یعنی یک احصالات عدم قاعده کافیه. همین که بگیم خرینه نیاورد میشه به میشه مثلا میشه همه اطراس سرایان اثبات شبیه این بخش رو بنده همه ارز کردن سامن اسم میشه اطلاق ذاتی یا اطلاق نفسی متی همین که گفت تصدق ادا حل حلال و شر تصدق همین که گفت تصدق او نیاورد میشه واجب تقییم دیگه مقدماته اکمتی مخواه اگر گفت تصدق او سله میشه واجب تخیری همین که او میشه ک نی مقدمات از خبر ابراهیم صاحب که فاینا ظاهرش این که مقدمات حکمت بود مو... نه مقدمات حکمت همین که ابنیوال میشه وجود ثاین همین گفت تصدیق میشو وجود ثاین دقت احتمال قوی هم داره که عامه قائل به قائل به این مطلبند یه احتمال دیگه هم داره که عامه و در حقیقت از موارد باهم یکی گیرسان خب عام مقدمات نمیخواد البته به استسایی برده مثل صاحبه که پایان مرمولانی که میگن میخوام مشهور بین ما آن مقدمات حکمت نمیخوام پس بحث اول برای توضیح بحث اصولاً بحث مقدمات حکمت که الان پیش ما جزء مسلمان شده این در اصل اصول مطرح نبوده تهلی آهازی ها این سرش اینه چونها بودن مطلق تو شیوع و سریان خابیده اگر بخواد تغییری بزنه باید قید بیاره همین که قیدنامه خودی خودش شروط و ترایان داره روش هن شو خودی داره بیاره. همین که با اهل الله و آل بیت وقتی قیدنامه و ترایان داره تمام افراد غیر اهل الله بعد اندر داره بله بعد اندر داره دیگه نیاز نداریم دیگه نیاز مقدمات یک‌بار نداریم احتمال داره به هر حال یکی از این وجوب منشأ توجه علمای اهل سنت بوده و قدمای اصولی که مقدمات حکمت رو نیورده احتمال قبلی داره مقدم من تا اینجاش این معاصلی صد و ای سال اخیر دیدم اما قبلش آیا از زمان سلطان مقدمات حکمت شروع شده داره الان نمیدونم نشده ما رو جهرکان به کلمات اما در این یک صد و سال اخیر در کتب و اصول ما قطعا این محره شده. قطعا مقدمات حکمت در کتب و اصول محره اما در خیلی از اصول قدیم اصلا مقدمات حکمت یعنی کی مدبری؟ همه که جنی به ماهن خودش مطلقی هیچ چیزی نیم مخاد مقدم نمیخواد همه گفت جنی به ماهن غیبت نظر هارن بارده همینی که غیبت نظر خواهیه مثلی که ما گفتیم همینی که یک واجب رو بیان کرده او نیمون میشه واجب تعینیم مقدم آزه اکمند نمیخواد احتمال داره اونها نظرشون بیرین بوده به هر حال صد و خورده ای سال که مع ما نحتی موقب بش چ قبلیانی روزه هن هم بود نش دیگه مراجات کنم به کلمات شیخ کن در ممسال و های قبلبی و سر فر جووابط تا احتمال دیم این مقدمات یکک در چه زمانی در ول شیعه شروع شده. این یک خورده ای سال میگوم ما قبلش نمیم این مال ترق نظره. پس کلمات مع استات خالی از بین تشریش و, و جابجایی نیست، یه بحثی دیگردن اجارتا انجام داده. و اما منحج روش این منحج و ردش طبیعی بحث و مروم آوازی ها اینجوری قرار داده علا فرض ما احتیاج مقدمات حکمت نداریم علا فرض داریم اون فرض اینجوری فرض دادن. اگر گفتیم تقیید مجاز مقدمات حکمت نکنیم اگر گفتیم تقیید حقیقت مقدمات حکمت دادن. این روشن شد این تط اول است اگر واقعا ما در این تعریف ابداهجبر رو که این تشکیل داشتیم اگر مشهور این باشه ما در لعاب این بی جنسه خب بالغ مجازیت داره چون عاقل گفت به ارتق رقل مثلا برگو ارتق اولی شای افیجنسی اما با دوبه معلوم این شای افیجنسی ارازه نشده که مجاز مجاز شای خودم که در مجازیت مراد جدی میره از مراد استعمالی ایسوشون شو مجاز دقیقه هر جا مراد جدی غیر از مراد استعمالی شد میشه مجاز بله. که خواهد مشهور نیست گفته ابن حاجه در کلمات آمده در کتب شیعه هم آمده چون ابن حاجه کلی متاثر به ابن حاجه هم در منتهای های در مستثل و خود آرزی هم احتمال داد مراد اشرایه باشه ما گفتیم این خلاف زهاره نصافه لیکن خب به هر حال گفته شده حال، حال میکنه. اونجا؟ چرا اونجا خیلی مجاز می چون کل بز شده دیگه اگه کل حالا بگو دارست چون فرصا خیلی قلب هم پس همه چون این راجع به این بحث و انشالله این سو... تا اینجا روش حالا بحث دیگه پس اولا یه صحبتی بود که روش بحث استاد رحمه الله روش درستی نیست، جا به جا و خیلی منظم مباحث نهی بردن طبعا میدونید که ما نستجی رو بنده ساد نظر نظر قهانت است بحث علمی است و بحث سرین است که این مطالب چجور باید تنظیم بشه مثلا مرموم ناینی چند تا مقدمه ابرد یکی از مقدمات آیا اطلاقات تو مفاد حیات میاد یا نه که دیروز شد؟ یکی از مقدمات تقابل بین اطلاقات حقیق چیه نه مقدمات حکمت مقدمات بحث اصول اما مرموم استاد روشی دیگری ای شد مرموم آزیا بحث مقدمات حکمت و همچین آی بروژهگی های بروژهگی بروژه هم ولی مثلا آی بروژهگی متأثر با آزیا نیست احتما نگاه نگشته درکیف اینطور باشه چون هم آ وجوددی متف است توکی پای هم معرو آاد روشایه ساافی های است. برقشتون کفا هم توج هم نگاه نکردن. مجموعون آضاد روش طمه ق رو اینجوری قرار داد که الان ازطراف موم. چون خود تسییم عروهاات وبحث ها رو یک روش مرک خودشی که از نکات اساسی علمینی وقتی انسان احافه به اون علمین داره میتونید این کارو بکنن. مثلا تحسین، تحسینی که از علامات رشد علمیه است. مثلا بگه فرض تو مصلح خیلی شد. این بعد احاطه به کل لحظات گشوده شد. یکی از عللی که از اهل الصنّة مثلا نقض ولادت قبول نداشتن مردمیومون گشتم. میگن توش اداب داره مثلا اهل ایمانگونی علار و داره. میگن زمان امیومونه. هنوز اینطور نبود. افکاری داشتیش هم داره که تو ناداد دارن تحسین بده و این مال زمان های بعده خب گفت که کار پاکن با قیاس از خود نگه اینا اشتباه شما مردی همون سه بقیه هر بله زمان و مکان سرشون باشه ارسان که خود تقسیم یکی از نخاط مثبت بحثه روش بحثی که از نخاط دقیقه این بحث روز سمانی رو نمیدارم فلسفه علمی که برزها درود شد یکی از اهدافش این بود که موارد هر علمی منظم و منتظم بشه اون ردش طبیعی خودشه پیدا بکنه در فیزیک در شیمی در مهندزی در قفل در جغرافی در فصل زمین شناسی در حصول در فصل هر بحثی اون جایبان مناسب خودشه پیدا بکنه به طوانی موادی و از مسائل جدا بکنه الان من های اطراع بکنم که موادست ما همون زرور موادی هستیم. این لذا در مطلق و مقاید فقط یه وصله داره همون الان داری توضیحات مقدماتی رو میدونیم و روشن شد که بحث مقدماتی حکمت چی جوری باید یا و حضرت استاد بردت الله لد این کتابی که آمده یه مقدار مباحث یا به جا شده روش رو بحث هایشون خواهد بشونه این که موقعیت خواهد مجالیت بیشن نهیشون خواهد نیست بحث هم آخرش حالا یه شوخی می گفت که همه وقتی ساختموشون رو خواه از زیرزمین بعد بالا ما از طباقه بالاش می کردیم ایشون <تصفيق> <تصفيق> از طباقه زیرزمینش این زیرزمینه خلی المجال ال... این زیرزمین برد یعنی اول برد، تأسات برد ایش. به هر حالشون اووردن این برد که اووردن این برد. این بحث یا این مناسبش اونجا چون اگر کسی قائل به مجازیه شو، کایناخه مقدمات حکمت نمیخواد دیگه. اینجاست که ضرر نداره چی؟ کافی کافیه. خب پس اینه باید جداگانه میورد. در هر حال جای بحثش به هم ریخته یعنی ترکیب بر... روشن شد اصلا من براتون روشن شد ه مرهوم استاد در ن مهاضرات لا من نمیخام بم دورا بعده جور ده فرمودم در انه که چاپ شده بحث و اینجوری قرار دادن اولا خیلی از مقدمات که مرمن رده نیردن تو لابابحث وردند مثلا تغییر در حاات شونن لا نه اطلاق در حاات نیر بحث تقابل رو هم تو لابا مدم اولا برده. از مقدمات جمت شون اول انقسام ماهیت وردن بعد از این قسام ماهیت که ماهیت محمده و فیلیمون هر حرفایشون رو بود در اونجا بعد اخسام مطلق رو اسم جنس و الان جنس و معرف به بلا و نکرده. این اخسام مطلق رو بودن روشن شد؟ بعد از اون مقدمات اشناد رو بودن زیر مقدمات اشناد رو دو تا مطلب رو یکیش قدرمات یکنی که در کلام مشروع دو مقدمات اشناد رو بودن شروع میشه میشم آیا تغییر موجه مجازیت بدم اینا آخر بربردن بحث کل بحثه ایشون به قبل هم بردن. این اح... همیشه احاطه خوبه که انسان احاطه چون الان عنوان نداره کتاب هممثل یک سینه مامی خلومن ساافه تا سا پ هرشته به خطر سیاه الان جدا میکنم دیگه تنظیمش آدم حس نمیکنه. امایه پشت سر هم آده حس نمی کنه چی ب من که به شما عرض کردن برای اینا جدا میشهید. خود جدا کردن بحث علامت خبرقیت احاطه به علمه به برد این راجب این بحث بحث دوم حالا براد شد که حقیقت باشه و مقدمات حکمت می خواهد مقدمات حکمت چند تا مشکل همین ستا رو گفتن در مقام دیان باشه قرینه نباشه قدر متعقد نباشه این ستا تا. وقتی در مقام بیان باشه قرینه ای بر تقیید در بین نباشه اون قایم بشه خیلی واضحه با هر چه رقم ازت مؤمنه گفت مؤمنه که دیگه جای اجتلاق و سوم این که عدم اطمینان نباشه وقتی کلمه که دیگه رب بخره این رب اصلاق نداره وقتی زهره ماها بره به رب گوجی فرنگی رب عنا رو نمیده اگه به بگم قیف میاره طارق خارجی ما اگر فرضون ذم مذکر طلب بابت که برو بازار رب بخرد ذهن انصراف داره یعنی قرار متعینش همون رطب گوجه فرنگی رب به انار دگیل به شویی خب اصلاط میشه رو بخر رب اطلا داره شامل رطب انار هم میشه عرف اینو نمیفهمه چون این قرار متعقلی وجود داره به خاطر وجود قرار متعین جای انعقاد اسلام اینه این سه داره آی خوی قدس الله نفسه چه سموقت داره قرار داره این رو در کرد باشه رو میباشه توش دو تا رو گذاشتن یکی هم خودشون اضافه کردن بله میبینم من با. بعد, بعد عرض میکنم دقت کردی روشن شد آه خویی من مال برو جبی باز کار دیگه کردن اشون فرمودن هیچ کدوم از این مقدمات محاسبه این جزء اولی یه مقدمات کافیه پس اگر ما ذریبه بکنیم با حول و قدر سنه اونجا نی هیچ از اساس عدم قرینه که یک از اوغله کافیه اصلا شو مواهب روشنه جنی به ما این آیا اصلاح داره یا اصلاح نداره من با مثال عرض می‌کنم علمای اصولیین میگن همین که قرینه ور کافیه خوشن. نه مقدمات ترتیبیون این چیز جنی به ما ان شاء الله رحم عبدالمحمش این یک ده. رای دوم اول برجیدی میفرماید نه یه مقدمه در مقام بیان باشه کافی دیگه نمی‌خواد همین که در مقام بیان باشه که بوق با جمی به تو مقام بیان باشه هر آبی مزدید آبی لوله باشه آب چاه باشه آب قنات باشه آب نهر باشه آب بار باشه آب کاری ماه باشه قريه باشه هر آبی باشه کافیه این بعد یه شد رای دوم نظر اون که نه اولا باید اطلاق امکان داشته باشه مثلا بگه با تحیید به حساب محل تحیید باشه مثلا اگر جنی ببایه ما, ما آب کوری مروی خوش دیگه غیب آب از کوری مروی پس با اون اصلاح اطلاق و در مقام بیان باشه و قرینه هم برخلاف ندار. بر تحیید درست نداره اینم رأی چندون شد سوم با رأی در مسئله همونی که مشکورتره در مقام بیان باشه قدر نیاره قدر متیقن هم نباشه پس منون شد این 1400 سال اون سورین علماءی اسلام چه کار این اون کل تاریخ و مسئله 1400 سال که شما الان روی این مطلب باید فکر بکنید که کده رو یکی یکی چیه نخواب همون اصال تر موقعی دو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 متکلم تو مقام بیان باشه کافیه هیچ چیزی دیگه نمیخواد اول در یک مثال واه اعتبرع عربا تن تصرر این تصرر عربات رو بخون متصرمانا بکنین چی جور سوال یک چیزی نمیخواد همیشه قرنوا واژگونه قرنوا که اصل خوب واضحه که قرنوا همین کافیه دو در مقام بیان بودن کافیه سه در مقام بیان باشه قرینه هم نباشه قدر متیقن هم نباشه چهار تقیید ممکن باشه در مقام اثبات و اثلاق و اطلاق رو این جرد ممکن بشه، اما اگر تقیید قابلیت نداشت جای تمسو که به اطلاق به اون لحاظ نیشون و در مقام بیان باشه قرینه هم نباشه این خلاصه چهار مبنا در باب سهم مطلق و در چه مواردی همزره روشن شدیدی شد خلاصه وقت مقدماتی حکمت و اهل سنت و خیرش رو پس در تقیه 1600 سال در این مقفته که بر من با تشریف تشکیف زهورا بین علماء اسلام اختلاف هست البته یک اختلاف ریشهی قبل از این هست آیا مطلق مثل آم میمونه دلات بر سریان میکنی اگر دلاتو برس کرده انتر امرش واضح دره یه خیلی واضح دره اما از این مطلق مثل عام نیست آم دلاتو بر افراد داره مطلق اصلا نظر و افراد نداره مطلق فقط نظرشون ماهیته من همیشه ارز کردن انصافن اگر موخید در مواهن سهل تو موفق باشین کل زحماتی رو که علمای اسلام انصافن هم خب زحماتی چیز کردن اگر ایسان معترف بشه که ما وقتی کارهای خود خودمون نگاه می کنیم خیلی اونها خیلی خونه دفتره واقعا مجموعه این آرا همیشه در ذهن مبارکتون باشه یه روایت داره که از امام میپرسه که اعلم الناس کیه فرمان اعلم به اختلاف الناس همین که احاطه داشته باشه بعقو با این اعلمیت در اون احاطه بعقوا حتی سر مراد امام اضافه بر اقوال میشه احوان اونها اشارهش چی بوده از چرا وارد شده این به یک استظهار، دو تحلیل. نه همیشه از بنوارتون باشه. ما در مباحث ظهورات همیشه این کار رو میکنیم اول استظهار اگر گفتن و قرر دین، اثر یک استظهار اصلاح نمی‌شه. تحلیل الله به اصلاح اصلاح نمیشه که نه ان انبیا به قرار تغییرش شدن یا نه با تو مقام بیان باشه چون در کتاب شریف در مقام بیان نیست تو در مقابل مقام بیان حضر میکنم انشاءالله مقام اجمال و اهمال در مقابل مقام بیان این دوتاست اگر گفتیم کتاب شریف در مقام اجمال مثل ارهد رسکم و هیم از الانعام الا مایوت لا علیکم این اجمال. یا در مقام اجمال عرض کردیم این تعبیر بر اصول این گفتره مناسب با شأن کتاب نیست. که قرآن در مقام. ما از که قرآن به منزله قانون حث به جای کلمه اجمال یک شیوه عرفی و غلوی شده 200 سال قانون احساس ساز قرار ندن. در مقام بیان نیست. در مقام اجمال هم نیست در مقام احمال به ما اصولی ها در این مقام یعنی یا به تعبیر با درستی کردیم در مقام اصل تشریعی اینطوری میشه میگن کلمه اِهماله باید به کار بره در قرآن کریم حالا با بگیم مثل قانون اساسی بگیم در مقام اصل تشریعی میگن نه در مقام اصل تشریعی باشه و اینجا در مقام اصل بیان باشه اینجا مقام اصل تشریعی پس این عقاده اطلاق نمیشه توی علی الله اگر این عقاده اطلاق من این چیزی چون در بحث آن اعرض کردم اطلاق یعنی چی نه اطلاق لفظی اطلاق لفظی که داره اطلاق آمینی چند باید رو هستند مرال از اصلاح قانونی یا عام قانونی اون لفظی که در جرسده برای اداره شک به حیثی که ناظر باشه به موارد شک اگر ناظرین ناظرودن سوشن بیان تو لفظ حدثش رفع شک، مثلا بییی به زبان فارسی وارد شده شک میکنید که درستیانه بگیم با اهل الله بگیم درسته در مقابل منگان اهل الله بده نذار بگین نداره که به زبان فارسی باشه عربی این در اصل تشبیه پس اطلاق نداره نه اطلاق لغوی اطلاق قانونی یعنی آیه مبارکه ناظر نیست که این شک شما رو برداره این شک به لحاظ اینکه زبان فارسی باشه عربی آیه ناظر به ای آیه ناظره این نیست خوب دقتو کنید آیه ناظر به اصل تشریع این معنای افلاق و عدم افلاق آیا برای اهل الناظر افلاق منعقد میشه یا اسلام منعقد نمیشه چند دلیل گذاش عضو میخوام فردا در تمی بحث و صلی الله علی محمد